این قصه قصه زجل و زندان و هفت صحبت بستی رو گرفت در اولش که شروع می کنند صحبت شب تاریخیست که شبیتون شبه رو شسته به قیش نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر دگرگونه آراغشی کرد ما بسیج گذر کرد بر پیشگاه چه تازش سه وحره شده لاجورد آری، سه هوا را به زنگاق و گرد نه از نه آباق مرغ و نه هر راق زمان زمانه زبان بسته از نیک و بد نشون میده که باید خراب و حتی توش تو همین ابتدای داستان اون چند بیده اول نشون میده که هبت و چاه و سنجیر و ها. هم هم. اول همه داستان های دیگه اینان همینطور و این یه اسمش یه صنعتیست در ادب <تصفيق> که بهش میگن براعت افتحلا این, کار. این کاری که چود میزن در اسم عددیش هست فراعت استهلال استهلال یعنی دیدن هلال ماه میدونید که دیدن ماه در وضع جینی مردم مسلمان تأثیری یعنی هلال ماه رمضان که دیدن از فردا روزه است پایداش و مارنزون که و روزی که شبش حلال دیده بسید برای حج و همین ترتیب. ده همه ماه زلحجه باید مراسم حج بودید ده همه زلحجه کهی دیده میشه ماه دیدن اول حسابت بنابراین بنابرای این یک کاری بوده و همونز که همونزه در ممالک عربی اینا ماه رو به اصطلاح افاق مکه میبینند تو ماه دور زمین میگرده دیگه اینی که یه ممکن دیده بشه یه جا دیده نه شه یه جا حلال یه جا حساب افاق مکه بوده وقت ما که در اینون شیعه هستیم به افاق خودمون میگیریم گاهی و در نجور بعضی وقتا روزا فرق میکنیم یعنی روزی که در مکه عیده قربونه به حساب ما نیست. در یا زلهجه این است که ولی خب همه توید می کردن اونجا از از همون مراسم که. پس استهلال یعنی طلب هلال کردن یعنی دنبال هلال گشتن. دنبال هلال گردن برای چی؟ برای اینکه بعد یه کارایی باعث بشه. براعت با این هم ببینی توانایی گاهی بینیسن عدیب باوه یعنی عدیب توانایی عدیب قدیم پس <تصفح> معنی براعت استحلال اینکه توانایی دیدن ما و مراد همینه که اینجا در مقدمه که اینه اون هلال میمون دیگه همین داستان شروع نکرده چه هم به که مقدمه میگه این مثل همون دیدن ما میمونه که وقت اون وقت یه از بزاری فکر دیگه شروع میشه در اینجا در همین در همین داستان سیاوش این برای استلال هست برای این که چنان که میدونید سیاهوش برحال یک گرفتاری های پیدر میکنه که تو داستان میخونیم داستان تجیدیه در حقیقت و تجیدیه خیلی جالبی هم هست به طور کلی عبارت هست از داستانی که منتحی میشه به مرگ قهرمان یا حتی قهرمانان ولی خب آدم خودش که نمیخواد بمیره خودش هم که نمیره خودش به تو دهن اجده ها دهن مرگ اما روش داستان یه جوریست که اینا رو خورد خورد خورد, خورد میرونه قول میده به طرفی که به راهی که دیگه برگشت نداره و منجره به مرگ این چیزها رو این های تون تونه که میگیرن اینا خیلی کمونده یه بیز شیری باید این. اینه ترزی گرفونی شدید خیلی یک چیزی یه یا یک اگاهی خیلی عزیزی بزرگ سلام علیکم می که ترزی به این این ماهی آزاد می اون تو که افتاد قضی خموز برای واش یواش یواش اینطور تنگ میشه تنگ میشه تنگ چونه این هیچ برگشت ندارد. از این را بره, بره تا میافته توی اوزچه اوزچه که میگم از این اتاق بزرگتر حل برکن ولی خب برای اون ماهی این اون وقت اونجا با نیزه باشید اینا میزن کلکشن کنه. یعنی این راه در حقیقت تونم افتاد تو اون چیز میافته تو شروع ترشیدی یعنی همینطوره مثلا فهمتا که در روستم و اسفندیار خب رستم جهان فعلوان ایرانه یعنی ایرانی که بارها رو برای نجات برمکه خطر انداخته رفته جنگ کرده چه کرده چه کرده هسته، تمام عمرشو صرف کار مهمایت از ایرانیا و حفظه به استقلال ایرانی اسفندیار هم شاهزاده ایرانی است اول دوم این که مقدس زردوش تقدیسش کرده دعا کرده بستش عمر شاهزاد شاهزاده شاهزادان پهلوان رو برموند و گفتن که روینتن بود که مردم عوام فکر بسن که خب روینتن یعنی مثلا نیزر کشون داده فرو نمیدن این که ظاهرا درست نیست روینتن مخصوص این بود که از قوی بود آسیب نافذی بود یعنی هر عمله ای رو میتونست دفت کنی ناظری که برد جب. در دارید. برجسته. قهرمان در یکی تمام عمرش هم صرف تبلیغ دین زردشت و استقرار دین زردشت و جنگ کردن با کسانی که اعتقاد به دین زردشت نداشتن و در جغادری مملکت اینا بود. میشه این دو بیان رو در روی هم این روستم که از جلو آفراسجا و جلو اشک بوس و جلو دندان کالهوانای دشمن ده این دفعه بیاد رو به روی شاهزاده مقدس پهلوان ایرانی که کاندیدای تاج و تخت رو, رو هم قرار گرفته که طبیثی که دلش نمیخواد قبیلیت چرا دارم التماس حالا اینکه میگم تجدی حسن بزرگش همینه که این که روستم استاندیار چطور شد خب اینکه کلاس چارم رو ابتدایی خونده میگه تیر زد چشم مرد <تصفيق> این مسئله نیست که اینجا بحث بکنیم یا بیم تو دانشگاه هرز بزنیم یا خب هر بچهی هم میدونیم استاندیار رو روستم کشت تیرم زد چشم کنیم مسئله قابل بحث یه که خب این شاهزاده ی مقدس ایرانی که محترم بوده تمام آن بهش خیر از کاره درست نکرده همش دنبال تبلیغ دین زردوشت بوده و با دشمنان ایران جنگ کرده، چجوری رو برو روستم قرار می‌دونه؟ و بعد روستم چه،, چه ارتماسی، چه درخواستی، چه خواهش سمنایی که آقا هرچی تو نگیان می‌کنم من, من روستم چیز نیستم؟ بیه بریم شامون چه داد سر ببرم؟ ببرم، من هرچی ندارم، میان باز. ایساندی ها رو من دست رو ببندن ببند خب دست ببندن یعنی مرگ افسانه رستم بگه اینی که بهش میگه چه گفت؟ برو دست رستم ببند نوندت من را و شب باز میگه یعنی خیلی که اعتماد خیلی یعنی راه یه طوری درست شده بوده. نر هم دم. پس آن چه این مرد یه این شاته در این هر به پات تمام دو چهارشته همه خانه داشت. بعد کات میره سریم شد، این همین نرعتی من. اون راه. این راه پونجا میشه. اول نابودی استان ها رو بعد نابودی خود رستم. این تراجیدی. و وقت اینکه که رو مرد اصلا این مهم نیست مهم اینه که ببینیم که این راه به چه تردید ادامه پیدا میکنه و چه میشه که همین سیاهشو میگه شاهزاده بود که هیچ کسی نبود که او رو ببینه و دوست مرشکه باشه و هیچ صفت نیکوی نبود که این شاهزاده درش نبود ولی میگه اولی که سرنوشتیش و اختر شماران و اختر شناسان دیدن دیدن که این شاخته بختش با و خلاصه چیزه این, این که چیز کردن اینکه بود تا رفت اون خاله این اینکه سوچی اینه و این داستان به این فرقی میشه یکی از عواملی که نوجه به این کار میشه پدر سیاوش یعنی کابوس بوده که محروف بوده به بیفکری و خودکامگی و خود رخدم یا بودرد میگه تو دانی که کابوس را مغز نیست و هم این نتیجه رفتار این پدر رو یه زنی که سر راه قرار میگیره و داستانی که هست این این این فاجعه رو به حدود میاره و جنگ های بیپایان ایران و توران که موضوع همه ملی ایران موضوعش پاهنامه همیشه در نتیجه پشت شدن وقت آدم ها به بیگناهی اول همه نوزر شهریار پادشا ایران بوده که افراسیاب میپشه اول ببخش اول ایرجه که باروتا روشه، آل موتور می‌کشنش. و این باعث جنگ بین ایران و توران میشه. بعد افراسیاب میاد پارچای ایران نوزه رو می‌کشه. این خون تازه میشه. و بعد سیاوش در توران پشته میشه که دیگه باعث میشه که این کینهوری و این مراحتیه اون چه خودش به بالا رفتن درجه عض. حالا اینا رو پوند کن در ذنم بنده ارز مکنم که از همون کلمه اول یعنی از این که گفتیم که شاهنامه یعنی چی تا اون کلمه آخری که درس سیگیم ممکنه سر امتحان سوال بیاده یعنی بپرسیم شاهنامه چی نوشتیم جاق اینو لطف بکنند دوستان باز این روزن هم من گفتن روزخون پشمیکال که گفتن چه گفتن روزخون پشمیکال شنونده یکیمینه روزش از فرنید ما هم هفت سال باید وزدار این درس ما خیلی جدیه یعنی مطالبیست که بلد نیست نیدید کناش. فکر نکنید چون فارسی حت میزنید با دوستان و اینا بنابارید بلدید نه، قسیه ها شده اینجا هست بلدید از جمله اینکه شاهنامه یعنی چی؟ ما اینو اینا درد آخر سالم کسی رد نمی کنید نه خاطر شما ها بنده دست به نورم تو, تو که اصلا تو ندهد خوب که بعدی سالی ولی خوب هم نیست حق طرف نیدم بشه ولی اینجا اوضاع احوال جدا فکر کنید که یه استاد ایران بیاد یه اون شاگرد ایران یا اگه افغانی پارسیده بود حال زبان ماده استاد ایران شاگرد فارسی. در مملکتی بیرون ایران بیاد همون موضوع زبان مادریشون درس بعد آخر سر نمره رد به یه دانشجوی بده این باعث سرشکستگی هم اصداده هم دانشگوه و از این دو تا باید اصلا سرشکستگی مملکت هست که اینا کیه؟ از مملکت خود خودشون پاشتن نمیدان اینجا زبان خودشون ورد اینه که من نمره رد نمیدم. ولی نمره های پایین یعنی آخرین نمره‌ای که میدم این نشانه اینه که اون دانشش چیزی نخونده. از من بردوده یعنی سوادی نداره. اون من برای حفظ آبرو نمره قبولی میدم ولی ولی ایزی ای اینجا نیست. درس و, و درس و فقط دو تا بچه‌ها بخونن و, بچه و شیرین هم هست. هست. شما یه تکونی به خودتون بدیم هم پیمی کن یکی از مسائلش هم اینه که درستی که می کنم بدیم شما روز قبل یه دفتون زبه یه تفش قبل تو خودتون بخون دفتون بخون میگیم که شما بخون برای اینکه همی کنم چیزی و یه مزاری شما می کنیم درست بدیم نمی شد ایش اگر نه باید زود رد چیزی نمی کنم یه چیزی یاد سعی می که امیز درس و اشکالاتی که شما رو مطرح کنین، مسائلی که شما دارین و خودتون توアレ نمیدونید، اینا رو حذف بکنیم، بعدم اینا رو لوط می‌کنین، جااش می‌کنیم، دردتون هم اگر بخواید بزنین، من اینم بهتون بگم برای بقیه درساتون به بهتون بگم، تنها درس که نمیشه چه آخر سال. و همش از اول خون تا آخر خون این روشی که دانشجو این می‌داره، ما تو درس جای جای دیگه این روش رو دارن یا نه این روش فقط در مورد یک چیز قابل اجرا نیست و او زبان شما زبان مثلا روزی پنج تا یا روزی تا لغت می کنین اگه داشت اگه بخوینی مال دو روز بیست دارو بخواد بدید نمیره تو مرد جایگیر نمیشه و اگه صد روز شد 500 تا لغت رو امکان نداره چهار روز یاد نمیشه <تص> برای اگه می زبان یاد بگیریم تنها راهش اینه که درسی رو که میگیریم مطالعه کنیم و قبل از اینکه سر کلاس بعدی بیاید اون مطالبی که کلاس قبلی رو به یاد داشته و مثلا اینکه تا قبل می نشینید سر تاخچه و صفه بحثی داریم می نشینید سر تاخچه از این گه و همینطور تا آخر. فکر کنید آخر سال می آخر سال نمی خونیم. من مرحله راحت میشه. حالا برین سر داستان چون که از گردم دوستان مطالب میخونن و از جلسه بعد که بنده خدمتشون هستم دوستان خواهم کنستم امروز چون نرسیده من میخونم و می‌خونم و معنی می‌کنم و بعد از دفعه بعد می می‌خونید بعد من درستم قبلش راجع به سیاوش یا سیاووش یا سیاوخش چنان که دیدید عرض بکنم که بعضیا اون سیا رو به معنی هم می می‌گیرم صورت قدیمش هست یا و آ تو این، این، این، نیست این، این زبون عرستاییست، با این آلفا ببینیدیسیم برای اینکه بتونید راحت بخونید، این آ اگر نداشته باشه، اون خاطرش اینان شینه. یلا. سیا و ارشن قاعدتاً در ناتفارتی شده باشه سیاورش. ولی شده است یا وایش یا سیا وخش. چنان که مثلا در کلمه روشن در ادستایی است راوشان. یه خیر این خیه در رخشان مونده در روشن خیر هست شده اوش مونده کوتاه شده این سیاه شده سیاه یا سیاه یا سیاه بوش قسمت اولش همون چیزه ورشن یعنی پهلوان و قوی و اینا سیاه ارشان یعنی به یک،, به یک تعبیر چشم به یک تعبیر، یعنی مرد قوی مثل سبز رو بعضی ها معتقدم که این سیاد در حقیقت زایاست یعنی مرد قوی زاینده که فیض میتونه برسونه در زم بگم که سیاوش رو حتی در دوره بعد اسلام از اولیای خدا میشموردن من در بعضی قصه های عوامان ایرانی دیدم نوشتن سیاوش ولی ولی یعنی دوست خدا به دلیل اینکه این شاهزاده هم بی گناه خوشته شد و هم همه استفات خوب رو داشت و در خود شاهنامه مرگ خود چه حتی پیشبینی میکنه که یکی از سحناهای خیلی خیلی جالبه اینکه این طور خواهد شد این طور شد این طور شد بعد به زنش میگه که تو وظیفت اینه که این کارو بکنی این کارو بکنی بله آخوش بفندیم سیاو بوش با دو, دو میشه اگر سیاوش بوش باشه و دیگه دوتو مینوزن توی شعر حافظ هست شاه ترخان ترخان مدعیان میشه نوست شرمی از مظلمه خون سیاو بوشش با دوتو با بینوزن بعد معنی دو بامش باشه چی با زایا زایا سیا و زایا این مال سیاوش مال سیاوهش زنش هم دختر افراسیابه دو تا زن میگیری تو این ماجرا و حالا ایراد نگیرم دوستانه که این چهرشت زیشتی بوده اون وقت رسمورا این بوده پیران صدر ازم افراسیابه خودش برای ایجاد خیشاوندی با سیاوش میگه من دخترم بتونی خودش بعد همین پیران که دختر خودش داده به سیاوش میگه که به نظر من بهتر است که کنی خیشاوندی با افراسیاب دو بود. و خودش میره دختر افراسیاب هم خاص کاری میکنه برای سیاوش دختر افراسیاب رو تا حالا ما فرنگیست میشناختیم فرنگیست هم خیلی هستی که اسم سیاوش هست ولی در این شاهنامه، در این شاهنامه که آخرین چاپ شاهنامه است که ازش در آوردیم اینا رو خدمت شما اسم این بانو فرنگیز نیست، فریگیزه و اینا البته هست مثلا فرض هست که افراسیاب در منابع عویستاینو هست افراسیاکه اینا اول یا مثلا اسفندیار استند یا و اسفند یاد و اسفند داد ولی در فرسه شده اسفندی برشد ها و مردم اسم رو همجورد که راحتران میگن بس کنوند قفل رو میگن قلف باید که راحتران قلف نرخ میگن نخر تاکسیر رو میگن تاستی اینا هم اینا تغییر میکنید اما این تا که این در در بوده بود تو دات ها که میشه اسمند بعد در فارسید اسمند یار ماهی نیست خب کنون ای سخنگوی بیدار مرد سخن در از بوده سخون سخون احلبی بخواً در فارسی شده سخون و سخون و بعد شده سخن به همین قاعده که گفتم هر مردم راحتر در میگفتم ما در تمام شعر فردوسی در تمام شعر سعدی مثلا اینا میبینیم که کلمه سخن با کلماتی مثل مکن مثل بون قاقیه شده که بعدم یه چیزی هم مردم عوام درست کردن که در تنگی نای قافیه فرشید خرب شد یعنی تن... تنگی قافیه گیر کرد آه سعدی یا فردوسی آدمی نیست که در تنگی قافیه گیر تواناییش تواناشو دیدین بعدم سخن رو با تن قافیه کنه با زن قافیه کنه یه دفعه این کارو نکرد یه دفعه نیست البته چه... چندین سری این نشونه اینه که بس یه جور دیگه تنفذ می‌شده همیشه سخن با بون و فکون و نمی‌تونه این‌ها قابل شد بنابراین سخون، بعدها های خطی قدیمی پیدا کردیم که علامت گذاشتن، اه گذاشتن روسی سین، او هم گذاشتن رو خیلی در قرن هشتم در حصر حافظ می‌بینیم که هر دو جورش به گاهی سخون، به کاری سخن. گاهی و بعد از قرن هشتان دیگه می‌شه دیگه سخون نیست خب. حالا ما پس میدونیم که سخن ولی تحقیش میدیم به شما و همون سخندوی ملارد کنیم خانون ای یه بیدار مرس یکی داستانی بیارای نه هست پردوسی رابی داشته یعنی یه مقدار از این ها رو به طور شفاهی شنیده بوده پرش گفتم و اصلا قسمت زیادی از این قصدار رو میگفتن سوش آنومه کتاب رو باید برازم بگن هنوزم هم نرقالات تو قلعه خونه کار میکنن برای مردم اینا رو میگن فردوسی هم ظاهرا معلومش که این داستان رو شنیده میگه ای گوینده نقض به منی خیلی زیبا و عالی و ایناست شیرین چین مثلا هم همه اینا و هنوز در تاجیکستان الان هست نمیگن خیلی خوبه میگن بسیار نغزه افغانستان هم میگن ها آمه افغانستان نمیگن نغزه تاجیکستان هنوز نگه بسیار نغزه نمیگه خیلی خوبه یا خیلی عالیه نمیگه نغزه بیدار مغز که من یه آقای درمجزی دم اسمش آقای بیدار مغز خانوادیش <تصال> <تصال> <تصال> <تصال> بیدارمغز یعنی باهوش که توی کلاش کار میکنه دیگه مغزش بیدار خوافی، مثل من، بنده و تلفن شد، بابا گفت که بیدارتون که ازم گفته، ما هفتاد سال ما بیدار نشدیم، حالا اگه بیدار کنیم، ما چه بهتر پنون ای سوهنگو یه بیدارمغز، یکی داستانی بیارای نه داستانی بیارای اینجا یعنی بگو، منتها به صورت خیلی خوب بگو برای اینکه آراستن، فعنی زیبا کردن و درست کردن دیگه کلمه سخنگوی یه ترکیب دیگه، ترکیب دوت کلمه چون این ترکیب خیلی زیاد، خیلی خیلی زیاد در زبون فارسی به کار میره و شاید تون ساعت دیگه بشت برمیخوریم من اسم اینو میگم بهش میگن صفت بایدی مرکب مرخم ازاره اما عادت میتواریم چون گفتم خیلی زیاده صفت فایبی صفت ایست که برکردن کاری داره از میتونه دیگه این سخنگوینده بوده دیگه سخنگوینده میشه صفت پای مرکب هم هست برای که دوتاست صفت فایبی خالی هم گوینده میشه صفت پای یه مرکب ما را خمد یعنی دوم بریده سخنگوینده شده سخنگو اون پسوند پایش افتاده. و قاعده این است که صفت فاعلی اگر ترکیب شد با یک کلمه فساوند فایلش میفته قدیم خیال می‌کردم که این اول اونجوری بوده مثلا سخنگوینده بوده بعد کم کم مخفف شده کوتاه شده ولی نه یه مثالی رو مهمی ما همین در روزگار خودمون ساختیم مثل دانشجو مثل بود اینا رو ما هیش وقت بلند بوینده و دانشتونینده نگفتیم که بعد بیم درست کنیم میشه از اول دانشجو. پس قاعده اینه که اگر صفت فائلی با کلمه دیگری ترکیب شد پساوند فائلیش میفته میشه صفت فاعلی مرکبه مرخم خیلی زیاد از این میخوریم. حالا خواهیدید با به همین دلیل من گفتم چون این ترکیب خیلی خیلی زیاد مستعمد کنون ای سخمگوی بیدار مرز یکی داستانی بیارای نه سخن چون برابر شود باخرت روان سراینده رامش برست سراینده از مستر سرودنه بنابراین قایده تن باید بشه سراینده سراینده هم هست منطقا با چون یه ذره در حرف زدن، ما سراینده رو کردیم سراینده میگیم داستان سرا، تران سرا، قصیب سرا، ولی در حقیقت اینا سرا رامش هم همون آرامشه، رامش و آرامش هر دو یکی بنابراین میگه که سخن که از روی عقل و از روی خیرت گفته بشه شنوندهش و گویندهش روانشون آرام شد از همینجا شروع برات استهلار میخواد به که کابوس کلش کار نمی کرد از رو درست پر کسی را که اندیشه ناخش بود بود به ناخوشی ناخشی را اون گشت و بعد همی خیشتن را چلیپا کند به پیش خیلطمند رسپا چون چه سرزنش ها که به کیکابوس کردن بعد از خشت شدن سیاوش رستم رفت توی حرم کیکابوس گیسوی سوداور گرفت کشون کشون ها بیرون جلو همه سرش برید و نفس نکشید این پار شد این بیا روی از این بیشتر که نمیشه ولی خب میگه مال اندیشه ناخش مال فکر برای کسی را که اندیشه ناخش با بعد بدان ناخشی رای اون گشت با رای به معنی نظر و چیز گشت یا کش حالا میگیم یعنی فکرش درست کار نکنه ولی فکر کنه که من خیلی خوب کار میکنم فکر میدونید که آدم هرچه نادانتر و هرچه بیشعورتر اعتقادش به عقل خودش زیادتر نمیدونم این درجع کردید یا نه یعنی ابلهترین مردم آدمایی هایی هستن که هر پیش کسی رو قبول نمی کن میگه نه من مسئلهتم این معمولاً آقلترین مردم کسانی هستند که بزنی که نظرشون فکر کردن چی کردم باز اینکه که فکر من اشتباه کرده باشم باز میرد از اینکه میفرسی که آقا من میخوام این کارو بکنم این درست درست نیست ولی بیخرتترین مردم است که هیچ هیچ, هیچ،, هیچ، چیز دکارت توی اون رساله فلسفیش گفتار در روش درست راه را عقل که میشه است، فرانساش خیلی کتا هدیست، گوگ اونجا اولش میگه که به نظر می رسد که عقل بین مردم دنیا از همه چیز منصفانه تر تقسیم شد. این توش یه پریشخند هست مقصود اینه که هیچ کسی از قسمتی که از عقل بشیده ناراضی نیست همه میگن حافظم خرابه ولی هیچکی نمیگه آه کله من خراب ها من کار نمی کنه فقط کسانی میگن که عقل من کار نمیکنه کنه من کار نمیکنه کنه که کار میکنه مرز و همین دلیل متوجه نفسی که داره سعدی هم همینو گفته گره از که زمین عقل منعدم گرده به خود گمان نبرست که هیشکس که نادان میگه اگه عقل از اون زمین برداشته بشه باز هیشکی نمی <تصفيق> کسی را که اندیشه ناخش بود بدان ناپشی رأی او کشف بابت یعنی فکر بکنه که خیلی هم نظرش خوب و عالی است چه میشه همین خویشن را چلیپا کند چلیپاس صورت فارسی صلیب معرب چلیپ میشه صلیب از اون صلیب همون چ کل چلیپاس قراره چلیپا چی؟ میگه که کسی خر باشه بعد, بعد به نظرش خیلی نظریه نظرگ... های خودش خیلی خوبیات خودش رو کنه به کمک باقیش هم میتونید ببینید به پیش خیلیتمند رسواه چلیفار میکنه نیست نیشگنه آره دیگه, دیگه. مستقیم نیست یعنی باعث شکستش میشه برای در سر طولیت میکنه دیگه نمیخیشتن را چلیفا کند پیش خردمن رسفا الیکن ای الیکن نجب ولی ای که نبیگند که از آهوی خیلیش تو را روشن آوید همین خوی خیلیش همه چیز سونجانم هست حیرت همه چیز. میگه اما من حالا گفتم که ای کسی خیلی به نظر خودش خوب بیاد و اینا آب روی خودشو میبری خودشتر میرون اما هیچ کس ای بخودش نمی‌ آهو معنی ای این آهو با اون کلمه آهوی معنی اون حیوان فرق داره این کلمه مرکبه خوب <تصفيق> صورت دیگری ای از, از خوبه در کلمه هومند یعنی نیکندیش هوم صورت دیگری از خوب آم پس پیشاوند نفیه آهو یعنی ناخوب اون یکی آهو آش جز کلمه هست این رب تو این اون آهو در تنزیر تنز آسو اسم همونه اید در زبانه ایرانی آهو و <تصفيق> یادمه که ما کلاس سال سال سوم عربیت پارسی بودیم سال سال سال آخر سال سال سال سال محروم پوردابود استاد ما بود گفت این آهو و آهو و اونی که آهو آسو همین حرفا که من به شما زدن بر سال سی و دو یعنی 41 سال بعد گفتش که خاغانی در این بیت خودش با این کلمه آهو بازی کرده خواقانی بیت داره میگه بنگران جانور که زاویت مشک مشک رو یهو آهو میده دیگه بنگران جانور که زاویت مشک نامش آهو و او همه هنر واضی کرده با این آهو که میگه با که اسمش آهوه یعنی ایپ، ولی سرطفاش هنره پنگران جان که زاویت مشک نامش آهو و او همه هنره است. یه بزرگ نرگی فلی دست من نشسته بود جزوان می نوشتن بچه ها بیت خواهانی نفتید این سه که پنگران جان که زاویت مشک نامش آهو و او همه هنره تا ا، چی خدا له آهو خوش‌بیزا. آهو یعنی ای، ولی چه نبت که آهو چه خوش. تو را روشن اویت همین خوش خوشی. کسی ای به خودش نمی‌مینه و هر کسی اخلاق خودش و خورق و خوی خودش رو خیلی خیلی خوب نمی‌نته. اگه اگه خوب ندونه که سعی می‌کنه عوض کنه دیگه اگه فکر کنه که این روش که من دارم بده خب کوشش می‌کنه عوضش کنه پس اگر پافشاری می‌کنه برای این که خیال میکنه خیلی هم خوبه ولی که نبیند کس آهوخیش اینا همه اشاره است که روی پیخردی و بیشوری این فاجعه سیاوش اتفاق می‌افتید یعنی براءت استعلالی که ازش هر شده ترا روشن آید همین خوبی اگر داد باید که آیت به جای بیا رایو زنفست دانان و ماست. داد به معنی قانون از ریشه دا دا در فارسی باستان فارسی باستان است که به خط میخیمینی بسن یه وقت منگیم زبانی میخیم در فارسی باستان دا به معنی آفریدن و به همین دلید دادار یعنی آفریننده. داد به معنی قانونه برای اینکه قانون قانونگذار این قایده رو از ذهن خودش میآخرید قرار میده یعنی میگین از فردام مردم باید اینقدر مالیات این اینست که داد به معنی قانونه به معنی عدالت هم هست در اینکه عدالت یعنی اجرای مساوی قانون دیگه درست؟ درسته؟ خوب. اگر داد باید که آید به جای بیارای و پس به دانا نمای اگر قرار قانونی اجرا بشه اول اون قانون درست کن بعد او رو به دانا نشون بده نمودن به معنی نشون دادن یا پس به دانا نمای به دانا نشون بده چو دانا پسندت پسندیده شد به جوی تو در آب میگه اگر و به دانه نشون بده اگر دانه پسندید اون پسندید هست. ولی ببینید این پسندت فعلی مزاره به پسندت بعد میگه پسندیده شد حالی گذشته چرا خیلی گذشته بود باید بگه اگر دانا پسندید، پسندیده میشود نیست را درست؟ درسته؟ باید بگه وقتی دانا به پسندت، این پسندیده میشود چرا میگه پسندیده شد؟ آله هیچ کدوم از علمه چیزی به هر روز ناقصی گاهی ما فعل مازیر رو فعل مازی رو به جای مضارع حتمی الجلبهو به کار می‌بریم چون مزارع هیچ‌وقت قاطعیت نداره که ساعت 7 من بعد از ظهر میام ممکن نا که ممکن که نمیان از اول دروغ بگیم خیلی ولی ممکن نتونیم نشه بنابراین نمی. نمیشد. در حالی که فعل ماضی قطع... قطعیت وقتی قطعیم که من دیروز مدتی رفتم این اتفاق افتاده هست و شما رفتیم. حالا اگر بخوام مزارعی به کار برم که حتمی باشه به جاش ماضی برن. آرش این دارم گفتم مثلا خریده به 200 دلار مثلا بعد میگم چند خریدی میگه 5 دلار میگم من 10 تاشو خریدم چنیتو میسنم داد خریدم یعنی چی یعنی که نخریدم یعنی به این تو میگی من به طور حق و غط 10 تا از اینو به این قیمت استعمال ماضی به جای مزارع محقق الوروق یه چیزی بگم که خانما خوششون خوشتون بیاد میگن در عقد ازدواج حتماً سیقه ی عقد باید مازی بشه. یعنی مثلاً فرز فهمه که آقا بگه خانم من با شما ازدواج کردم خانم هم بگه قبول کردم چرا؟ برای اینکه آقا بگه خانم من با شما ازدواج میکنم با طرزی آینه خاص بکن دلش زد میگه حالا من فکر کردم که اگه هوا ابر نباشه با شما ازدواج می حالا ابر ولی وقتی ازدواج کردم دیگه این جنب چهلمضی منججز منجز یعنی قاطع منو ببینید اینجا میگه که فیدوسی میگه وقتی که دانا پسندید دیگه این تمامش پسندیده شد یعنی حتما پسندیده میشه به جوی تو در ببینید این نشونی که من میتد خوش دهن. مثال همون از آب آب تو نیست دانا پسندید مثل که آب تو جوی تو روان آب چون دیده شد برای اینکه چشمی که بینایی داشته باشه باید همیشه تر باشه آب باشه میگن چشم بشتده هست یعنی نابیناشون <تصفيق> اینه که میگه به جوی تو در در جوی تو آب آمد مثل آبی که در چشم در جوی تو آمد برای آب آمدن تو جوی خیلی چیز مهم می بوده. اینجاها که رودخونه ها یا عظیم میسیسیپی و نمینا هست توسی اصلا فکر که آب تو جوی باشه نیست. بلی دلیه اون چه بسید مذاره باشید شیر یک بار من شنیده اینجوری معنی کردن که بسیده شد دانا پسنده هست پسندیزه شد همین شما فرمدین که خب این قابل قبوله دیگر اگه اون پسندیز پسند شده مثل یعنی اینجا به جوی تو در آب دیده شده اینجوری معنی کردن اونجوری این پسندیزه شد به اون روشنی که آب مثل دیده هست یا حتا به ویدیوی تو در آب بعدی این بوده و همین دلیل همیشه با بند و با مکن قافی میشه. میگه این داستان هایی که سالیان سال کوهنه شده میدونید که عرب ها آمده بودند و داستانه بیز همه این داستانه هم یا موبدان یعنی آخونده ها میدونستند یا دهگانان به معنی ملاک های خورده ماله که مردم تحصیل رو و درخونده بود ریش های اینا داشتن میکردن این داستان ها کم کم فراموش شده بود در روزگاری دروس شده میکنن به این کار دیگه کم کسانی بودن که این داستان ها رو میدونستن این داستان ها خریداری خیلی نداشت. اگر کسی میخواست بره به یه جای برسه باید عربیات یاد گرفت و ف میکرد و خود رو به دستکان نزدیک می کرد گرفت این کسی خاالب به این ندا دیگه که این داستان که از ریشه قنه شده حالا نوع و روزگاه کهانه رو نو کنم اگر زندگانی بود دیر یاد بر این دیگر خوب بر این دیگ خور هم بمانم دراز یکی میوداری بمانت من که بارت همین بار او برچمن می دهی که من داستانه کهانه رو دارم نعز می و اگر عمرم اجازه بده که خوشبختانه اجازه هم دار به تا دوستی... حدود هشتاد سالگی هفتاد سال کنی چه آفتاد سالگی بود شاهنامه رو کرد و پونزه شونزه سالگی ها در فقط وقت وقتی مفلط زندگی کرد هشتاد و پنی ولی شاهنامه به حال تمام کرد و اولی که شروع کرد به نظم شاهنامه در حدود یعنی بهترین روزگار تختگی و همچی او رو اینا کرده و تمام عمرشو یعنی بهترین ساله همسته هفتاد سالگی نه عمرشو عمرشو سرمایهشو همه چی بوده شوید نه شو از اینشان برای اینکه درست یادتون بمونه من دو تا بیت هست می نویسم اینجا این دوتا بیت رو حفظ می کنید دوتا بیت دو امال ملکساره باهاره اینه حفظ می کنید برای که تمام تاریخ زندگی اشترسی در این لبه سی, سی یا به سالی کمتر یعنی از مادر وزار روشو هم به و پنج کرد آغاز دستان گفت بریم این دستان کسی که هم شفت پنج از باید محبات و همه رو جمع میکردید بیتار می... ولی سال سی و پنج سی. سی و پنج سال یا سی و شیش سالش شروع برو مطمئن در عوام چهار سر شد افتری در دو سال چهار سر نزمیشان رو میتونم یازده سال بیگر. یعنی <تصفيق> در چهارسد یادزه بعد میگه ولی شعر بهار این این تمام اونچه از از تاریخ زندگی فردوسی میخواید بدونید در این دو بیت و میگه که اگر زندگانی بود دیر یاد، یعنی اگر زندگانی من طول بکشه بفهم بر این دین خورغم بمانم دراز و من بر همین عقیده باقی بمانم یکی میوداری به ما هست من میودار؟ این درخت میود. اما دار خودش معنی درخت و هنوز در مازندران اصلا درخت نمیگن. میگن دار. در تهرون هم میگن دار و درخت. دار و درخ. اون داری هم که آدم دار میزادن بهش اونم هم درخت میده. یعنی یه تنه درخت بوده یا به خود درخت میبسن یا درخت رو میبوریدن باید چیز میگردن. به هر حال و حالا که این مذب پیش آمد، این قصه دارزدن هم بگم، این دار زدن که هر قابیز بکنن و آدم خفه میشه این خیلی خیلی تازه است. یعنی یه ست سالی بیشتر از این کار نمیزه. پیش از او دار زدن که ما همه هم میبینیم، ولی توجه نداریم، این صلیب ایسا چیه؟ همه همه این مذبی دیگر داره دار، گاهی، به همون صورت بوده که یه دیدید حضرت مسیحش دار کشتن؟ گاهی نه، یه تنه درخت ساده بوده این دفتار رو از پشت بیوستن، این تنه میوستن، محکم پارم از پایین میوستن به درخت باشه بعد، توب این پورایی که نمیمورد شدیدترین مجازات این بوده که نامرزن باشه از گشنگی و تشنگی و همه از دردهای حوناک چنین که اینجا روی می که میبندن جریان خون قلب و اینجا خانقرایه میشه دست و پا سیاه میشه و دردهای حوناک و خیلی سخت خاری خار می می این تخاری خار میمیره ایم میخواستن راحتش کنن زودتر تیر بارونش یا سنگ می‌کردند. میکردن بعد دار کردن, کردن حتی که وزیر در. تاریخ ویحبی هست اونجا جزئیات قضیه رو گفتند دوستان این به هر حال دار به این معنی که حالا هست نیست بنابراین ممکنه یه جا توی کتاب بخونوین که دار زدن پلانی رو بعد زدن دار آوستنش پایین این رست این درسته یعنی به دار که میزادن قدیم فورا نمیمورده طرف و دار معنی درسته همون دارم این خب. یکی میوه داری به من از من میشه گفت یعنی درخت میوه یکی میوه داری به من از من که بارت همین بار او چمن. بار یه معنیش میوه هفتشت معنی دیگه هم داره که من با تا میگم یکی بار به معنی اجازه دربار یعنی دری که باید اجازه بگیم به این سو بار دادن میگم پاسچا بار داد یعنی اجازه داد در که اونها تا خدمت بگیم بار از مستر بردن یعنی یه چیزی که میبرن بیزن رو خرق بسطور بسطور بسطور بار این دوتر بار به معنی کرانه و ساحل رودبار یعنی کنار رودخونه تو ایران ده تا رودبار داریم یکی رودبار گیلان جویبار یعنی جوی بار یعنی کنار جوی دریابار یعنی کنار دریا بار به معنی میوه که الان گفت بار به معنی چیز اندکبه هایی که داخل چیز پر باهایی میزنن مثلا تلا رو این که اینکه بخوان بسازن طلا خیلی نرمه خوب نیمونه باید یه فلزی دیگه بزنن تو اون دستازش میشه پین یا ده دستاز، یا اینجا که تلاهاشون غلابیه، چارده، یعنی چارده در ده دیگه نیست ارز که اون چیز گرانبه ها، یعنی تلاه رو میگن ایار بس میگن تلاه یعنی تلایی که نوت درصدش طلا. هست اون کمبه ها رو که توش میزنن بشه میگهن بار حالا این بار گاهی مثل بنابراین تلاق خیرم شرمش شد گاهی نقره هست بنابراین تلاق رنگش کم رنگ کردن میشه ذره سرخ و ذر سکی این هم میتوان کنیم که ذره سرخ سفید که میگن خود ذره که یه جور بیشتر نیست هم یه جور بیشتر نیست ذره سرخ یعنی ذری که توش مثده باشن بارش مثد باشه ذره سفید یعنی زری که بارش نبره باشه بر مثلا اون باره؟ نه اون بریدن بردنه و اون بریدن. ارز که همچنین مثلا آبگوش که بار میکنین گرانترین چیزش گوشتشی نخود و لوویا و گوج و فرنگی و سیبزمینی ها عرض میفرد اون میگن بار میگن بارش زیاد بارشو زیادتون یعنی پوستش که همون هست چیزه دیگر زیادتر. بار کردنه که آبگوشتو بار کردم یعنی همون یه جایی که مثل بار بزنم بروش مثلا هم پشتخدم، یعنی چیزی که میبرم بازم، همون خب بس بره. جایی که اجازه بگیرم برم یه بار فرنگی داریم، این بار ولی میله است اصلا. و قدیم یه میله بودی که جل اونجو بایی میسادن و عرق، هرچی میخواستن گرفتن بعد میله کم کم صورت پیشمون ولی اون بار فرنگیه، فرانتوم ایندیسیوینا، بار یعنی, میل، نه، یعنی میله هرز کنم که خدا بیان ارز حالت شایر خوبی بود ساخته بود که میان کافه شمشاد و جمشی، کافهای دور جهونی ماستا، نان خاله نید. نیان کافه شمچاز جمشید اگر دیدی زنی در پشت بارست حمایت کن برای سامنی توانید که او هم از زنان باردار هست حمایت مادران زنان باردار بود که اون هم زن باردار هست بران اون بار چی بعد یک کلمه دیگه داریم باری باری گاهی بارست با یه وحده یعنی یه بار مده. یه باری دیگه داریم که این جوز کلمه به معنی دست کم به من یه لاغل اطلی <تصفيق> باری میگه زنبور درشت بی مروبت را زنبوری گونده زنبور درشت بی مروبت را گوی باری تو اصل نمیدهی نیش مزن اجا اصلا نمی لااقل لااقل بش بار این لااقل پاتیه باری معنی یک بار یه باری معنی لااقل یه باری گندریم عربی ذات باری باری تعالی چه چیزی که اون اصلش بارئه بارئه یعنی خالق یکی میوه داری به ما نزده من این ماشین باری بار میکرده یکی میوه داری به ما که بارت همین بارت از ریشه باریدن داریدن معنی فرود آمدنه بارون باریدن بارون باریدن برد باریدن سنگ باریدن میده یعنی فرو ریستن و فرو دامده که بارت همی بار او برچمن از آن پس که پیمون پنجاه و هشت یعنی چیز یعنی چی یعنی چی مقصود عرضش چیه شاعر پنجا هشت میگفته خود شاعر در 58 هشت داره میگفته پنجا یعنی الان پنجاه هایست از آن پس که پیمون پنجاه و هشت به سربر فراوان شگفتی گذشت. میگه بسیار شگفتی ها بسیار چیزهای عجیب و غریب بر سر من گذشت در این پنجاه هشت سال همی آز کمتر نگذشت به سال همین روز دویت تقدیم وفاذ. به معنی هست و تمامه. ما یک کلمه قصاری از مولا علی بن ابی طالب داریم میفرماید که فرزند آدم یعنی فرزند حضرت آدم پیر میشه و دو حسلت دو در اون جوان میشه یکی حرث یکی درازی آرزو، آرزو بر جوانان عیب نیست یعنی بر پیران عیب نیست باید دار نیست انوز فکر اینه که باید چرا بکنه اون یا اون اون یشیبوب نو آدم و یشب بکیه خسلتان الهرث خسول الامر ببینین مثلا این کلمه علیه جالب با اینجا اینکه آت به سار در نمیشه اشاره که همین آد کمتر نگردد به سال همین روز جویز تقریم و فال دیدی تقریم و ساعت ساعت میگم ساعت دیدین این میخوان زن عفت کنن میخوان مسافرت برن ساعت خوب بگیدن این روز جستن یعنی روز مناسب جستن از تقریم و فال این اشاره به همونه که میگه بازم پیرم که هست بازم روز مناسب برای ساختمون ساختن، برای زن گرفتن، برای دست درسدنم به تجارت بازم دنبال روز مناسب و روز و ساعت میمیم روی. روز شویده ترزمیت باید چه گفتن در این موبلی، اون وقت فرد خیلی خیردمندی بوده میگه با اینکه آدمی آدم میخواستن داره ولی موبد، موبد موبت پیترو موبد فهمیده گفت که هرگز نگردد از خوهنگشت نو no. گفت چیزی که شد دیگه نمونه میشه کنم که من یه دوست خیلی خامزه ای داشتم خیلی آدم جالبی بود و یه شب به من گفتیم بریم یه رستوران خیلی دنجی بشینیم شعر بخونیم و اون تبش به لاکی متماهل بود و حال چاقوه در و اصلا تحصیل اهل شعرنام بود و دفعه میکرد برای گفتیم شب از لاتفازی سر رفته بریم بریم توشه دنجی بیشینیم شعر رو پس، من فیلیم یک بود در ایام جوانی و کافهی بود کافه آتند بر کار را میرک شدم و قلبت بود و بیشتیم من و اونجا هر خودمون می یا آقای محسنی اومد اون وقت جب یا آقای محسنی اومد این طرف میشست و اصلا نه، این دنبن. دنگاهش دیشتی درنجه تو کاخه قضایی که میخواد سفاش بود به باید باشی که بهتونو بخورید کراک مغز سفاش باشید با سوب یه میگوید دندو میمید اتفاقا این پدر یکی از دوستان اون دوست من خسرو بود اسمش این پدر یه احباسی بود که بعدی بود به خسرو به من گفت این بابای احباس ها اه خب آره زندناش هم کشیده بینید که مرس که خارشته ها زندناش کشیده فردا یا فستفرداش اتفاقا عباس دید، عباس هم درمی دست به این دوستان جاهل جاهل صادعص بود و دعواکن بود اینا این بچه یعنی هایی که جوون‌ترای که طبعشون بازم به لاتین متمایل بود و پدر مادر دار بودن آدم حسابی بودن ولی خب دوست داشتن اون کارا رو می‌موندن در دستین یک شمی افروز. آمد و به حسو خانم سلام علیکم سلام سلام ادب و صواب بفرمایید بفرمایید. بعد بچه‌ها تو پوشه خاله مادر که البته بنده معذورم از سر کلاس گفتش که دیشب بابای بابای فلان فرانسوی هستن تو پار پسو. تو از کافه فلان, فلان مرضی که فلان فلان به خب درنوناش هم کشیده بود اون خوراک مغض سفارش داده بود فلان فلان شده بود فلان خوراک شده که ای چی؟ خوراک خدا سفارش بدی درنونا دیگه در نمی. این صورت جدیده همین حرفی که چه چه گفتن در این موقع پیش به هرگز نگردت مهنگشته نو اما مگه بشر قبول می‌کنه معلوم 2000 تا واسه اون دو فرنده از وقتی من اله پول اینا الحمدلله نبودم همیشه لات و گلنده رو از هفت آسمون یه ستاره ایشواخ نداشتم ولی همین درینم الان دارم مثلا باز چون درس میگم اما به هر حال برای کارای خودم بازی یه گالمی تا دل بخواد ندارمش فکر این که عجل یه روزی ممکنه بیاد همه اینا رو کلکچر بکنه اصلاً نیست چه گفتن موبت رو هم بگم موبت اصلا به معنی رئیس روحانیان دین زردوش زردوشت هم به روحانیان گفتن مخ بعد از دین زردوشت هم بازم گفتن مخ طبقه بود. طبقه روحانیان امروز گرامم آخوندار لباسای مشخص دارن و وضع مشخص دارن به طبقه ازدن اون وقت هم بود حت حتاوند به معنی رئیس و سرور بزرد کرد در فارسی شده باد، در چالوییست په باد، یعنی رئیس است پا. هیر یعنی رئیس آتشگاه دار. یعنی رئیس مگان. کوه بد. یعنی خزان اینا همه رو این میرزا های دوره قاجار فکر کردن که خب این بعد ممکنه با بعد اشتباه باشه، چندین بود، هیر جوری بود؟ سفار بود. غلطه. به کلی غلطه. یعنی شعرهایی در شاهنامه هست که اتفاقا همین تو همین داستانو هست میگه تو برداشت پرده در هیربد یا وش همین بود، داستان همی بعد. اگه اینو هیر بود بخونیم بیت غلط می‌شد. واقیه نده بنابرای این کارت داریم که اینا بد ترخوادیم اما این که فکر بکنن این بعد با اون بعد اشتباه بشه این دیگه موسکتره برای اینکه که ما مثلا چهار تا سیر داریم سیر در مقال پیاز، سیر در مقال گشنه سیر در مقال روشن سیر واحد بعد مگه به هم اشتباه میشه اشتباه نمیشه اصلا هرک شیر سه طلاعقل شیر داریم یکی شیری که مایه سفیدنگ که میخورن یکی اون ایوان دررنده یکیم شیر آب بایگه نه هم اشتباه میشه البته بگذاریم که در قدیم شیر دررنده رو تلفظ میکنن شیر و شیر خوراکی رو تلفظ میکنن شیر اون جای مچهول اون جای معروف که حالا بعد خواهند براتون بلی حالا که یکیه با هم با هم اشتباه نمیشه بنابراین این حرف هست هم مزخفه یعنی رئیس مقان موگونفت شده بعد. این پت همونه که اول کلمه پادشاه همه پادشاه یعنی رئیس شاه هم البته یک پت یا پاد دیگر هم هست به معنی ضد و مخالف مثلا در کلمه فاض زهر میاد فاض زهر یعنی ضد زهر اون غیرت دو تا مثلا شیر یا سیر که گفتم اونم دو تا پات دو تا دو تا فاضه یکی معنی مخالف در فاض زهر در پتیاره پتیاره یعنی ضد یاری یعنی دشمن و مخالف بنابراین پتیاره خیلیش گوش بدی نیست معنی خیلی بدی هم نداره ولی معنیش حالا بدتر خودیه یعنی کسی پتیاره برش ولی پتیاره یعنی زد زد دیاری. یا پاسخ یعنی زد سخن سخن و پاسخ نقطه ما پاداش دهشن پات دهشن من شما میهد یک کتاب هم میدیم منم انعام میدم شما اینجا پاداش این وعنی ضد یکی هم پاد حیثی وعنی بعیف پادشاه یا صفحبت اون بود گفتم که این اطلاعات روایت های ملیوینا رو موبدان داشتن اغلب و فردوسی تمام داستان ها رو یا نوشته داشته که میگه که فلان کس بود که نامه خسروان رو داشت یکی پیر بود نامش آزاد فرد که با احمد سهل بودی به مر کجا نامه خسروان داشت کتاب. یکی یکی هم منابع شفاهیه که میشنوه کسانی که از اون میشنوه یکی موبت داستان رستان و صحراب رو میگه زموبت به دینگونه برداست یاد که رستم بر از باهم دارم از موبت شنید. یکی دهقانش یکی هم معشوقش میگه قصه بی و رو من از دوست مهربان سادم چنینجا سکت منبع اطلاع شفاهی فرزان موبد که خانومش اطلاعات کتگم داشته که چه گفتم در این موبد پیش رو که هرگز نگردد که هنگشت نو بینید اینا همه حکمت و خیرد و اصلاحیه که ارز کردم همه چیز در شانوم هست اینا حالا قسمه که تیر زد تو چشم اصلاحیه که اصلاحیه تو چندان که مانی سخنگوی با که رضمان با تو نکوخوی باش, باش. میگه کهانه نو نمیشه ولی تو تا هستی سخندوی باش سخن رو گفتن که عبارت از گفتاریست که بر اساس فکر و اندوشه باشه بنابراین سخن رفتن توتی رو سخن نمیگه همینو در عربیش نگه میگن نطق انسانو میگن حیوان ناطقه حیوان ناطق معنیش اینه که میتونه حرف بزنه معنیش اینه که با حرف دادن اندیشه خود علی طرف میبره بندل خوبی حیوان ناطق نیست بیگ ناطق معنیش که تو چندان که ما سخنگوی با یعنی, یعنی سخن مرد بر فکر و همدیشه خیراتمان باش و نکوخوی با تا حسی میگه تکلیفتون نه تو رفتی سر و کار با ایزده اگر نیک باشد جای عربده اگر به معنی یا یکی از مشخصات شانه اگر به منیر استعمال اگر به یا مگر به منیر شاید تو رفتی سروتار با ایزد اوشن اگر نیک باشد جاید بده یعنی خواه داد نیک باشه خواه بد بشه ولی بعد بلا میگه میگه این نیکوبت نه این که کنی که خدا هر رو خواست عمل می نه نگر تا چه کاری همون بدربی ببین چی میکاری؟ هر هرچی کاشتی همون دروم می کنی سخون هرچی گویی همون بشنبی اگه به یک کسی گفتی آقا سلام علیکم من در ارادت دارم که نمیگه برو مرد که خر اونمیگه سوان اگرم گفتی مردی که میگه مردی که کلات. نگر تا چه کاری همان بدروی سخن هرچه گویی همان پشنوی درست درشتی ز کس نشنود نرمگو نرمگو یعنی کسی ببینید نرمگوی باز صفت فاعلی مرکب مرخم یعنی کسی که سخن نرم میگه نرمگوینده درشتی ز کس نشنود نرمگو به جز در زمانه مزید خواست میخونید شما دقیه بعد آغاز داستان رو وقتم هست و از دقیه بعد انشاءالله دوستانی کنید در زم دوستانی که تازه آمدن دوستان روی صفحه که آغاز افشت رو میمسن من پیش نکنم آغاز داستان سیاهاشه که از قول موبت روزی نهارو می که چون این گفت موبت یک روز پروز بدان گه که خیزد خروش خروز خود و گیب و چندی سوار برفتن چه از در شهریار به نخجیر گوبران به دشت همان باز و یوزام نخجیر تو، فراوان گرفتند و انداختند علف ها چهل روزه برساختند علف ها چهل روزه برساختند یعنی آزوغه و خاربار هم کودشون به هم مرکبه که سوار بودند برای چهل روز برداشتند با خود بدان جاگه ترک نزدیک بود ترک نزدیک بود یعنی سرزمین تورام بود بدان جاگه ترک نزدیک بود زمینش سه تارید. خرگاه معنی خیلی بزرگه ولی معنی مطلب خیلیم هست یعنی بسیار سپاییان اینجا بودن ساده است یکی بیشه پیچنده آمده دور به نزدیک مرز سواران تو مرز به معنی و به معنی سرحد به این معنی که امروز میدوریم نیست این معنیش تازه برش درست کردن یکی بیشه پیش آمد، در آمد زدور، بیشه سرزمین درختار یا میزاره، هر جو چه میگن بیشه حتی اگر با دست درختار ساخته باشن این کنارهای رود الان در اصفهان ها، درختار تبریزی و سفیده رو نام میکارن درختاره و بهش میگن بیشه اونجا، به اسم اشخاص هم هست، بیشه حبیب مثلا این که بیشه جایگاهی که اگه طبیعی باشه درخت نه هر دو هست اگه محصولی باشه درخت یکی بیشه پیشندر آمازه دور به نزدیکه مرزه یعنی سرزمین سواران تو هم ایران در پیچ با توز گیف پسندر پرستنده چند نی گیف و توز. توز که سپه سال های ایران بود گیو هم داماد رستم و سردار برجسته ایرانی بود این هم درجهشون از بالاتر بود جلو همه بودن پشت سرشون هم چند تا خدمتگذار نیو یعنی باشمور و قابل و تربیت شده به بیشه یکی خوب روح یافتند دختر زیبایی، زن زیبایی پیدا کردن خب خراسان خندلق هر دو بشت آفتند خور از خداچی میخواد دو چشم دینا سردار و قهلبان و زن زیبایی در جایی که اومدن دنبال گورخر اومدن دنبالش چکار بعد چکاری به این زیبایی وقتی پیدا کنند خب خیلی لذت میدارن خندیدن هر دو رفتن دیدن که به این خوبی کسی به این زیبایی نیست اصلا به دیدار او در زمانه نبود خوبی بر اون بر بحامه نبود. نبو اینجا بحامه در یعنی ایراده یعنی زیباییش هیچ حرف نداشت و خوبی بوده زمان زمانه نظیرش نبود و از خوبی هیچ جور دیگه زیباییش ایراد نداشت هیچ جاشو نمیشد که ایرادی بگیری به گفت توس ای فریبند ما تو را سوی این بیچه را که را پیشه یک شکارگاه حتما لازم نیست که حیوانات بی آزار داشته باشیم ما که نهیوان بررندن داشته باشه یه دختری تک و تنها پیاده بدون مرکب بدون سلاح یکی که آورده در این بیشه کیتر تو رو راه داده به این چون این داد پاسخ دخترک چون این داد پاسخ که ما را پدر بزد دوشو و بگذاشتن بومو بر شب پدرم منو زد یا در حقیقت میخواست بزنه منم اون سرزمین رها کردم و آمدم شب تیره مست آمد از دشت سور همون مرادید مراو دید جوشان زدور یکی خنجه را آقون برکشید همیخواست هم از تن سرم را برید پس حقایت زدنم نبود حقایت کشتن بوده اصلا میگه پدرم مست در شب تیره از دشت سور یعنی جایگاه مهمانی ظاهران شب وقتا بوده به مهمانی و خوشبزرانی و مستن شده بود و برگشته حالا از دست دختر چرا وقتش تلف بوده دیگه نمیگه اینجا دیگه که شب تیره مست آمد از دشت سور همان چون مرا دید یعنی به محض که منو دید همان هو مان یعنی نیک ماننده یعنی درست مثل اینکه وقتی من جوشان یعنی با عصبانیت و ناراهتی جوشان دور یکی خنجر آفرون برگشتی سلاح ها رو مخصوصا سلاح های تیز و پرنده رو نه کوبنده مثل گرس پرنده مثل شمشیر و خنجر رو معتقل دارید باید پولاد خیلی خوب داشته کشن پولاد خیلی خوب زن نمیزن سگلی هم درخشنده است به دلیل درخشانیش وقتی خیلی تیز باشه میگن مثل آب چون آب هم زلال و درخشنده است و در داستان سماک ایار بارها میگه که کار دیگه چون قطره آب برکشید البته این کار دیگه میکشه برای سربوردن و برای کارهای ایاری است ولی به هر حال بارها گفته شده که مثل قطره آبه این خنجار آبمون برکشید یعنی خنجار تیزی همیخواست از هم سرم را برید این است که قبلشم گفته که من چیکار کردم منم در رفتم آمدم و حالا اینجا در میشه به پهلوانم برگم بپرسید از او پهلوان از نجات و اون سر به سر سربون کرد یا پرسید که از نسل کی هستی از نجاد کی هستی دختر کی هستی و او تمام نژادشون حسبش رو یاد کرد به دو گفت یعنی به پهلوان گفت من چی گرسی وزم به شاه هافیدون تشت پروزم یعنی برای این که توران اصلا تورانی ها اولاد تورن و تور و سر با ایرج در فریدون پریدون منو این خود به خود گرسی وز که برادر افراسیابه و هر دوشمون که سر بردی هستم برمان پشنگ پشنگ از اولاد توره بنابراین میرسن به فریدون طبعا به دو گفت من خیل شکرسی وزم به شاهاخیدون که شد پروزم نجادم به فریدون میرسم. البته این جاب مثل اینکه نیست در نصفه های دیگه از طرف مادرش هم که از سوی مام هم خاتونی هم. خاتونی هم یعنی این که مادرم کنیز زرخرید نیست و این رو خیلی مهم میدونستان معمولا بود دلیل اینکه کنیز رو از جاهای دیگه میآوردن نژاد دیگری داشته بعد معلوم نبوده که جوزه چه تباری هست چه جور مردمی هستن طبیعتش چقدر بوده وضعش چقدر بوده یه مقدار اونده‌های روحی داشتن به هر حال بچه کنیزیت گرفتاریای داشته و مزایری رو نداشته محرومیتایی داشته که بعد در زندگیش تاثیر می‌کرده اینه که اون اصحای دیگر شاهنامه میگه که من از سوی مام هم خاتومی هستم یعنی از دو طرف آزادم و آزاد زادم پیاده به دو گفت چون آمدی که بیباره و راهنمون آمدی میگه خب حالا این حرف همه درست باورش نمیاد میگه خب چکری پیاده تا اینجا آمدی این نه عصبی باره یعنی عصب نه عصبی نه راهنمایی اچطوری آمدی چون این داد پاسخ که به بماند ز سوستی مرا برزمین برمیشم اینکه عصب تشتم سوار شدم و سوس شد خسته شد و در راه موند و حقیقت مطلبم این است که عصب یه مقداری بیشتر بمیتونه به تخت بره. و معمولا فاصله های خیلی دور رو که وقتی میخواستم تی بکنم منزل به منزل که منزل هم معمولاً دو فرسخ بوده این دوازده کیلومتر. این رو به تازه نفس حاضر آمادهی که قضاش خورده باشه، تیمارش کرده باشن، گردونده باشن آماده باشه برای سواری هست و این پیک که به سرعت باید میرفته سوار می میشده به تاق میرفته تا منزل دیگه اونجا اون عصد که به کلده خسته بوده و فیس عرب از او بیاده شده عصبونی sport 20 کی سانی که اصطلاح موازی کنند کنن رو بگردونن جو خاصی بیشتر کنن غذا بدن تیم‌هاش کنن اصل دو تا سوالی که میرقید خو اگه به جای این دو فرصت بخواد چهار فرصت این رو به تازه باید عصب میمونه جایی اصلا نمی میره یعنی جایی خسته میشه جایی ممکن اصلا یه کلی سقط شه گل کوچیک اینی که میگه که عصبم موند چون این دار پاسوف که عصبم بمان ز سستی مرا بر زمین بر بردشان بی اندازه ضرب و گوهر داشتن به سربر یکی تا آج زر داشتن بسیار ضرب و گوهر داشتن تا چی ضربین بر سرم بود بدان روی بالا آزمن بسکدن بالا یعنی بلندی اصلا بالیدن یعنی بزرگ شدن قد آدم من که بالا علف مستریست یعنی بلندی بلندی قد بنابراین بدان روی بالا بالا یعنی تپه یا بلندی میگه اون طرفی بلندی دوزدان اینا کسان بودن این از من گرفتن زر گوهر بدان روی بالا ز من بست دادند نیام یکی تیغ بر من زدن من با غلاق تیغ هم زدن گفتن مثلا برو گم شد راستن ردش بودن اصطلاح نه که سر منش بزنن با, با غلاف زدن حالا می که اینه که من و پیاده آمدن نظر گوهر این چیزی رو گرفتن و من رو روندن و من آمدم چه حوشی و پدر بیگمان صغاران فرستد پس من دمان وقتی که پدرم حوش بیاد چک نیست که با عجله و با سرعت دمان از همون دم زدن یعنی نفس زنان یعنی به سرعت سوار پیمان میترسته و بیاید همان تازنان مادرم تازنان یعنی تازانان یعنی در حال تا تازنان مخفق تازانان یعنی به تاخت بیاید همان تازنان مادرم نخواهم که از این جای گفت بای سرم میگه من اینجا ایستادم برای اینکه پدرم میاد مادرم به تاخت ماد، من نمیخواهم انجرت بشم این طرف خواهد که ایران بودی که است که اینجا ایستادم تا او بید. البته حالا در باقی داستان گفته میشه که دختر رو میبرم سرداران و بعد هم یا کسی به دنبالش نمیاد یا اگر به دنبالش آمدن دیدن که نیست و ناامید شدن و آمدن در خاکی بیانم هم صلاح ندیدن و هر حال دنباله این مطلب یعنی تعقیب این بانو از طرف کسانش و خیش آوندانش و پدرش و مادرش موقوف منه در شاهنامه ازش گفتگونی نیست داستان این است که پهلوانان دختر رو با خودشون میبرن و بعد داستان سیاهاش به این ترتیب Oh, Awas awesome.